بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل وصحبه اجمعين اما بعد بسنهم درس از درس ویال عليه الصلاة والسلام آیه افسد نو الله جل شأنه قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون قال معاذ الله برادرای یوسف اومدن نزد یوسف گفتن که برادرمون که دزدی کرده را آزاد کن به خاطر پدرمون که پیر سنی ازش رفته ناراحت میشد دلتنگ میشه یکی دیگر از ما را جای برادرمون بزار یوسف علیه السلام در جواب آنها میگه معاذ الله پناه میبرم به الله شما از اول قصه داستان یوسف با ما بودید اگر دقت کرده باشید یه تیک کلامهای جمله های هم یعقوب علیه السلام داره هم یوسف داره و هم برادرانش جلب توجه میکنه خب اینجا یوسف میگه معاذ الله اونجا بازالیخا هم که اومد بس بسش بکنه قباش بکنه بازم میگه معاذ الله توحید رجوع به الله دعا توسل جهی به الله جل شانه پناه همیشه الله را بیاد داره اون درجه هم آیه قبلی داشتیم حتی برادر یوسف هم به صالح بودن و محسن بودن یوسف اقرار داشتن غیر از الله که یاد میکنه از مقام و منزلت یوسف از صلاح خوبیش انا نراک من المحسنی برادر یوسف اعتراف کردن وقتی که دیدن از عدالتش از انصافش خب این جایگاهی هست که یوسف بهش رسیده با چی رسیده؟ با عبودیت در نظر داشتن الله همون درجه احسانی که من چندین بار تکرار کردم انت عبود الله که انکترا تیکی کلام یعقوب علیه السلام خب در جانب مصیبت میاد این در جانب فتنه میاد یوسف هرگاه بحث فتنه هست فتنه زنه فتنه دنیاست. میگه معاد الله یعقوب علیه السلام در مقام مصیبت واقع میشه و الله المستعان فصبر جمیل. که کلمه خوب دیگه, دیگه علی ازمان بازم خواهد اومد چنان چه گذشت فصبرون جمیل باید شکیبه باشه امتحان الهیه مصیبت انسان باید صبور باشه رضایت به قضا و قدر الهی در جانب فتن احکام شرعی الهیه مقام عبودیت این رو اقتضام میکنم ایا کنستعین مقام مصيبات عبوديات قضامكم إياك نعبد قبل قبلا منيات كأدم در بحث يعقوب زمانك يقول والله المستعى فصبر جميل والله المستعى مقام در فتنها نياز بتعاداري مصيبات زنة فتنية مال الدنياز نياز ذلك أسأل الله بخي اللهم مكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك الله خذ مروا كفايتكم مربي نيازكم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عفت مخام تقوا میگم بار فتنه است دنیاست از تو مقام استعانت میطلبه روی بیاری به الله با کمک جوستان در این مقام مقام فتنه مقام مصیبت عبادت میخواد چنانچه الله جل شانه او در سوره بقره توسیم استعین و بالصبر و الصلاه اختران این دو با هم استعین و بالصبر و الصلاه نماز هم به خاطر همین توصیه میکنم کتاب فضل قیام اللیل امام آجوری حتما هنوز یک شرح کوچیکی دارم روش حتما گوش بدید فضل قیام اللیل. و الله کتاب عجیبی از امام آجوری عجب کتاب این کتاب فضل قیام اللیل چند تا حدیثی سه تا حدیثی ضعیف توش هست از مجموعه پنجاه تا اثر و حدیث بلکه همون حدیثی که گول کرده که صحیحش همون یازده و زده تا حدیث انسان بدون در فضلش چقدر انسانو یاری میکنه الله با همین نمازش تهجدهش آن شما این در خودتون احساس میکنید مثلا وقتی که اعتکاف میکنید نماز تهجد میکنید به خودتون میگید ای کاش هر روزمون اینطوری بود هر روزمون اینجنین استقامتی داشتیم صبری داشتیم با الله بودیم مقام عبودیتو احساس میکنید بنده اید بنده دنیای نیستی در آن بنده ای اللهی، مقام عبودیت توصیه هایی که رسول الله صلی الله علیه و میکنه شخص بیدار بشه مسواک بزنه آب تو بینیش بزنه دیگه در اون روز وقتی که بیدار میشه اون نمازشو خونده اون وضوشو گرفته در شب دیگه اون روز اون حالت کسالت و تنبلی چنانچه رسول الله صلی یاد میکنن دیگه نداره شخص این از فضیلتای این نمازه شخص اون عافیتش اون سلامتیش بهش برمیگرده با این یعنی از آثار حسیش میگم غیر از آثار معنوی و پاداش رسول الله صلی یاد می‌کنه از اون آثار حسیش ما نمی‌بینیم شب که می‌خوابیم شیطان چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم شیطان این شیطان لبیته توفل خیاشیم شیطان چیره میشه بر جسم انسان بر بینی انسان بر اونجایی که خصوصا توصیه میشه که انسان انسان بینیشو بشوره والا این شیطان چطوره چیه چکار چی میکنه با انسان ما وظیفه عبادت خودم رو انجام میدیم تعبدی خودمون رو انجام میدیم و اونم خصوصا بینی خصوصا و بالغ فی و مبالغه بکنیم در استنشاق الا نکونن صائم مبالغه در استنشاق بکنیم این توصیه شرع خب اینا من فقط از باب توصیه میگم این نکات همش تو اون فضل قیام الله هست دیگه نیاز دیست که من تکرار بکنم از اون آثار چه حسیش چه معنوی که در اون احادیث هست و رسول احساسم بهش توصیه میکنم فقط من بحثم روی عبادته پس یوسف برداشتمون از این تک کلامش که الله تکرار میکنه ازش یعقوب این تک کلامش که تکرار میکنه برادرای یوسف شما مبینید؟ کسان خم فاران قسم خورده اونجا همینطور این کلمه ای قسم از برادران یوسف شما میبینید مقام دروغگو قسم یاد میکنه فقط بخواد خودش رو تبره بکنه دنبال مکر و نیرنگو فرق می‌کنه. جایگاهش مقامش تو قسم بالا یاد میکنه ولی تو میدونی این جهرش زشته این در مقام معصیت واقع شده اینجا مقام فتنه مقام مسیبت مقام معسیت مقام معصیت توبه میخواد که الا میاد توبهشون و توبه میکنن مي میان اقرار میکنن پدرشون میگن پدر برای ما استغفار کن اللهم رب اغفر مقام چه معصیت ق معصیت مقام معصیت اقرار میطلبه احتراف میطلبه احتراف به درگاه الهی یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمی اقرار بار الله من به درگاه بنده مقصرم نه با انادت و لجورزی نه با انکار و با تبره کردن صاحب خودمون از کتاهی و تقصیر مقام عبودیت این میطلبه که تو اقرار بکنی به درگاه خالقت همونطور که آدم اقرار کرد رب نه غلام نه الله برالله مقصرم ببخشم این که انجام دادم هم خیلی کمه میدونم حقت را چنانچه شایسته هست به جا نیووردم برالله ببخش مقام تقصیر عبودیت كرس الله بعد تهجدش اقرار بش ميكادم وميكفتن مونا عيش رضي الله هاك مش نيدم كرسولات بعد تهجدش ميكفتن اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتي أعوذ بك منك لا أحصي عن عليك نمیتونم سفاست شكرت ربجا بيرن بار الله لا. لا أحصي عن عليك این مقام چه؟ مقام اعتراف بتقصير اعتراف بكوتاهي این بايد در مبقر رنگ که همیشه در مقام ظالم واقع بشیم نه نقام مظلوم خودم رو ظالم ببینیم ربنا غلمنا انفسنا ظالمین خودمو رو تبرئه نکنیم احتراف بکنیم درگاه الهی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من اضع. اللهم اینی ظلمت نفسی ظلما كثيرا لا یغفر الذنوب الا انت ظلما كثيرا یکم والله یان داکنس شرشور از گون پر از گون الله بخدمه رو نبخشه الله عفنا کنه ما رو چطور رومون بالا میاریم الآن تواني شو داري سر بروكوع پاهم ياري مدبار الله سبحان ربي العظيم بحبت وعزيم بزرگ توباكم ونزهي من بندته سحنة محشر شاد جلوة ششد بياد اون لحظي الله يوم يكشف عن ساق الله مياد در اون لحظي كشخش برزي دبر خلائق در سحنة محشر كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله خطب بندگانش ميقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القحار لله الواحد القحار لمن الملک مالکی بودید؟ کی شما را آفریده بود؟ الله یکتا قحار الان مخور شدید، مغلوب شدید دیدید همون سرکشی تو، همون متکبری تو، همون خودخواهی تو، همون تنبلی تو، همون سستی تو در اون عبادتی که از تو خواست بودم انجام ندادید، جسمی دادم، تنی دادم، قدرتی دادم، نان دادم، آب دادم همه نعمت را در اختیارت قرار دادم که شکر مرا به جا بگیبری ولی به جا نیووردی قدم باید بیاد بیار اون لحظه که سرش به سجده میذارم به سبحان ربیال اعلا و به حمد تو بالایی بارلا من زلیلم به درگاهت من کوتاهی کردم به درگاهت من مقصرم به درگاهت تو حظیم بزرگی من کچکم من چیزی نیستم مقام عبودیت بندگیه خام بندگیه که از ما اعتراف می به از ما اعتراف به تقصیر میترا گفت قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون پناه میبره به با الله عزوج، پرهلا پناه میبرم به تا اینکه ظلمی بکنم معاذ الله این میگه من نمیام یه کسی گناه کرده کسی دیگه رو به پاش بسوزونم هر کسی ظلمی کرده خودش تابان زل رو پس میده قرار نیست کسی دیگه تاوانش رو پس بده هر کسی مسئول عمل خودشه یک قاعده ای به ما در زندگی یاد میده اینجا چشم دیگران ننداز نگاه خودت کن یوسف داره بهشون درس میده چیزی که اینها را در حسادت انداخت نگاه به دیگران بود نگاه به برادرشون بود چرا پدرمون بیشتر بهش توجه میکنه چرا پدرمون بیشتر دوستش داره نگاه خودت کن کاری به دیگران نداشته باش فلانی چیه چه است از کجا میاره به کجا میره به کاری به زندگی دیگران نداره چند تا فرزند داره چند تا همسر داره چند تا خونه داره چند تا ماشین داره ربطی به تو نداره این فضول زعف ایمان و کفران نعمت و حسادت هر گاه بدونید که این شخص شیطان داره وسوسش میکنه امنه شیطان یجری منه من آدم مجرد دن. وقتی که تجسس میکنه در زندگی کسی سرک میکشه در زندگی کسی بدون که در خون شیطان جاریه و داره اون حسادت را در قلبش به غلیان در میاره جوش میزنه اون حسادت در درونش چو بود داره نقص داره چون خیرخواه دیگران نیست چون خودخواهه این خودخواهی ابلیسی درش داره قواقا میکنه انه شیطان يجري من مناده مجلدا بترس دیگران خودشون در قبر خودشون میخوابن من و تو هم در قبر خودمون میخوابی نباید چشمون به دیگران باشه قاعده کلیه که یوسف علیه السلام داره برادراش یاد میده هر کسی مسئول عمل خودشه تو مسئول عمل دیگران نیستی مسئول عمل پدرت نیستی پدرت بکی بیشتر داد نداد بکی توجه بیشتر داره نداره به تو ربطی نداره تو مسئول عمل خودتی این یک دو اینه که در قصاص در حدود تعارف با کسی نباید داشته باشیم کسی که اشتباه کرده خودش متحمل اون گناهشه اون جرمشه دخترمون باشه پسرمون باشه برادرمون باشه خواهرمون باشه هر کسی میخواد باشه وقتی که مقام اجرای حکم الهی میاد دیگه در اونجا تعارفات کنار در اونجا پارتی بازی کنار در اونجا منصب و جاه کنار حکمه باید اجرا بشه هر کسی خطا کرد باید قاش باشه فلم مستی اسو خلاص و نجیه فلم مستی اسو شدن شخصیت و قوت روحی و روانی یوسف علیه السلام در عدم تأثیر وسوسه برادرانش این همه اصرار این همه پافشاری برای یکی دیگه جای بنیامین باشه برادرش ولی که یوسف اصرار داره علیه السلام نه این قانون این شرع الهیه شرک و دونه میام پناه به الله میبرم از اینکه بخوام خلاف الله انجام بدم شخصیت قدرت شخصیت بر پسرته دخترته همسرته در مقابل شرک و نیام یا جلوه غیبت بگیر جلوه تجسس بگیر مبال خودته حق نداره همسرت سرک بگشه لا تجسس و لا تحسس حق نداره حوزه حسیه خودته خودت عمل خود میدین و اونم عمل خودش غیبته همون روز اول با جلوش میگیری حق نداره نه از خواهرت نه از مادرت نه از خواهر خودش نه از برادر خودش عیب ای بگیره ایراد بگیره پشت سرش حرف بزنه جلوشونو نگرفتی تو میشی اجیر تو میشه اسیر تو میشه عبد اون زن که خیلی اونچینی نه دیگه برده زن نمیتونن برن جایی نمیتونن معامله انجام بدن حساب کتاباشون دست همسران شونه ضعف شخصیت این بدترین چیزی در زندگی که سبب میشه انسان بشه برده دنیا یا برده اون زن جایی شخص میبینی برده دنیا اسماله دنیاست, مال دنیاست. عبد الدرهم و, و دینار نه همسر نه زن هیچی چیزی نمیدونه فقط میدونه پول با در بیاره بکنه این عبد دنیاست جایی شخص عبد زنشه باید همه چیز گزارش بده اینجا رفتم این خوردم این اومدم این رفتم این فلان کردم این با این رفتم اینقدر پول به حسابم اینقدر پول رفته از حسابم تو مسئول عمل خودتی زنت مسئول عمل تو نیست حساب کتاب خود بین خود و خدا باشه به بجای اینکه بیای رسید حسابات و فلان و کارکاسی بید کف دست خانومت بذاری، بچسب الله به اون تخصیراتی که داشتی در اون روز، در کوتاهی که داشتی در مقابل عبادت تا عد بیا در منزل سنتی بخون، بیا در منزل قرآنی بردار، جلو بچهات بچهات ببینن قرآن داری میخونی. اون قدر که مرد نیاز به قاطعیت جدیت داره در زندگی، نیاز به حلم نداره. حلم خوبه باید حلیم باشه، بردبار باشه، سمر باشه. آدم باید مهربان باشه صفات خوبیه ولی این صفات ازش سو استفاده میشه اگر قاطعیت جدیت نباشه اگر حزم نباشه قدرت شما میبینید اینجا الله داره ب... بهمون تذکر میده فرزندت اومد پافشاری کرد روی قضیه ای وقتی که میدونه خلاف شرع هی پول تو ندار، نذار هی هرچی خاص بهش نده به قول خودمون لوسش بار نیار قرار نیست هر خاصه ای داشته باشن تو بخوای بری خودتو در قرض و بدهی بندازی به خاطر فرزندت چشمش فرزنده به زندگی اینه این فلانی موتور خریده تو چرا بر من موتور نمیخری؟ از همون اول شیطان اون بچه رو اقواه میکنه اقواه میده و فریب میده به اینکه که بحث همون دیگه چشم تو زندگی دیگران دیگران دارن فلانی فلان موتور داره چرا من نداشته باشم نوع تو الان با بچه هد نوع کاشتن بزر قناعت بزر رضایت به قضا و قدر بحث مسلح تندیشی اینها تو باید بذرش بكاری بشینی با بچه‌ها حرف بزنی اینها باید معالجه بشه درمان بشه فعلا ما سئ منه خلصوا نجیا کردن ما امید شدهن از ای این کوتاه نمیاد حرفش هست شرع خداست کوتاه نمیاد خلصوا نجیا گوشه رفتن خودشون تنها نجیا اومدم مناجاتو در گوشی با هم دیگه ای کردن که حالا چیکار بکنیم با پدر یک گوشه رفتن برای مشورت کردن یک قاعده اینجا شما یاد می گیرید خلاسونجی وقتی که مشورت داری با یک قومی یک ای با یک دوست و رفیقی اون مشورته باید حفظ بشه المجالس بالامانات پیام خصوصی برات یک دوستی فرساده حق نداری که دیگران را برش مطلع بسازی خصوصیه بین تو و برادرت بوده حریم خصوصیه یا مشورتی بوده یک گرده همی داشتید مشورتی داشتید در یک موضوعی کتابی میخوای بنویسید ترجمه کنی یا هر چیزی دعوتی داری کلاسی میخوای درس می‌خوای باز بکنید این بین اون جمع مشورت داری میکنی باید اون شیته و اون حوزه باید حفظ بشه درش دهن لق نواشی به قول خودمون سب میخواد نیاز به تمرین داره که این قضیه رو یاد میگیره بعضیا شیپورن بعضیا بلنگو بعضیا رادیو ان رادیو نباشید قرار نیست هر چیزی باید پخشش بکنید همه باید بدونن نه. یه سری چیزا باید نگه داشته بشه یک مسئله مسئله مشورتم جای خودش و امروم شورا بینام این توصیه شریعته اینجا درسا هست از اینجا ما میگیریم اینجا وقتی که یک فرزندان یک پیان بردفتران یک گوشهی خب از اول ما داشتیم اینا قدرت داشتن چون یک دست بودن اهمیت یک دست بودن اینجا هست توی این قصه یوسف قدرت ولی خب نباید اینجا اون قدرت تبدیل بشه به چی؟ افتخار تبدیل نباید بشه به کبر و غرور و یا محونه این این این را کم کثرت کم فلم تغنه عنكم کم قدرت زمانی که با الله باشی درسته بهت قدرت میده در ظاهر شما با هم یک دستی دیگه باشید ولی الله با شما نباشه هیچی به حساب نمیاد. ید الله مع الجماعه یک دست بودن خیلی مهمه و این یک دستی با یاری تلویزیون از هم دیگر در اون مشکلات در اون مثلا بفر من مشکلی بهم پیش میاد تو اون جمع خصوصی دوست و دارم که دستم رو بگیرن هارون اخی اشتد به اسری یک دست یک باری بلند بکنید یک کیسه برنجی بخوای بلند بکنید سخته ولی 40 کیلو مثلا در نظر بگیرید حالا دو نفری بیاد بلند بکنید راحت یا نه حالا چهار نفری میخواد بلند بکنید برادرت از دستش نده با اذیت با آزار با غیبت کرده برادرت بیکی سخت نگهش دار دوستی رو حفظ کن خیلی مهم ها بحث این جذبه داشتن حفاظت بر اون وقت و برادری بعضیا یا تسترن امروز با اینه میاد تستش میکنه امتحانش میکنه فردا با اونه پس فردا با اونه سقرار نداره. بعدم خودش با اون اخلاقش با تسرع و عجلگیش شتاب زدگیش فوراً موقعف میگنه خشوقی میشه اینو از خودش میزنه و میره با این خصومت، با اون خصومت هر کسی میاد یک عیب ازش در میاره، خودش فقط کامل بقیه هیچ کس نمیفهمه، فقط خودش میفهمه. همه دستش فراریه. اینو نکاتیه که در اصول تربیت یاد میشه. دارن و یوسف که بزرگ شدن هنوز این تربیتی ادامه داره. هنوز نیاز دارن اون بچه ها که تربیت بشن، یاداوری بشن. پیرمرد شدن، پدرشون هم مسن، شیخ کبیره، بزرگه. هنوز اون رابطه پدری و فرزندی هست. هنوز جمعاً هنوز پدر نصیحتشون میکنه توبه بکنن، استغفار کنن، فلان کنن، اینجا اشتباه اونجا خیلی مهمه. احساس مسئولیت در ما باشه. و بعدم جمع را حبس کردن. از جمع جدا نشیم. هر به هر قیمتی که هست. شنا شر صلى الله عليه وسلم توسيبنا نمازج جماعات مين؟ شر التوسيبنا ما من ثلاثة في بدو ولا راكب لا تقام فيهم الصلوات إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية ما من ثلاثة سنة نساء في بدو شو مخان دار سفر وشان هرج وشان سنفر در دار شهر وشان لا تقام فيهم الصلوات نماز بقانش يبغى بو جماعات نماز الجماعات نقول أهمية جماعة أهمية جم لا تقام فيهم الصلاوات نماز بارك وناشى إلا وقد استحوذ إلا محالة نميشى إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان انهاره لا رغوش منكشه الشيطان برو نوت شيري مشي. إلا وقد استحوذ عليه الشيطان إما حالة كين قذيروخنا ديني فعليكم الجماعة جمع بدون نبدأت مقرى صلى إنما يأكلوا ذيب. شيطان خیر سید میکنه یا اکل من الغنم القاسیه بس فندک از گله جدا شده بر باشید با گله باشید با رک باشید با دوستان باشید حفظ کنید تو سرمایه چرا رسول الله صلی الله علیه و آله قصه اون فرد رو یاد میکنه میگه که فردی از شهرش بلند شد رفت به شهر دیگر به خاطر ملاقات با دوستی میگه فرسل الله ملکا فيما ملکی فرشته میفرسه جلوش کجا داری میری جلوش میاد به شکل یک شخصی نمیدونه که این فرشته است میگه دارم میرم فلان جا فلان جام فلان شخص ملاقات کف برای چی دنیا معامله کار کاسبی گفت قلنا گفت برای چی انی احبه فی الله فی الله دزشت قال فانی رسول الله الیک من نكونید پیام آور و پیام آور الهی ام پیام آور الهی بسوی تو که چی بهت بگم Allah, چون الله چون تو او را فلاح دوست داری الله هم ترا دوست دارد محبت فلاح حفظ این سرمایه محبت فلاح دوست داشتن فلاح یک شخص سرمایه هست این سرمایه سمرشیه الله ترا دوست می دارد این حدیث را رسولا برای حفظ و حفاظت بر دوستی و خوبت فلاحه که باید حفظ بشه سرمایه هست بزرگترین سرمایه هست پناه انسانه هستید نشدن توسط شیطان جمع وقتی که نباشه دست هم هر وقتی که نگیریم سید میشیم غصه مرا سید میکنه غم مرا سید میکنه معصیت مرا سید میکنه فتنه مرا اینو همه تو سوره یوسف داریم دیگه. جای مصیبت جای فتنه هست و جای معصیت دور برمون پر از اینهاست. جای پات می لغزه مشکل مالی پیش میاد، جای مشکل با همسرت پیش میاد، با فرزندت پیش میاد، با کار و کاسبید. با خودت اصلا. لازم نیست کسی برات مشکل پیش بیاره. خودت با خودت گاهی مشکل داری. خست میشی، روحیت زده میشه، تنبل میشی، سوس میشی، نیاز داری. یه نفر دستت اونجور محکم بگیر بلندت کنه. بس اشد که با اخيك. موسی، پیغمبر الهیه، الله میگه ما با برادر تو رو بلند می کنیم. نیروت میدیم، قوتت میدیم. موسی که پیغمبر الهی نیازمنده به اون قدرت برادری و من منو تو چی والله از باب اولا نیازمندیم که دست هم دیگر رو محکم و محکمتر بگیریم بگیریم موسی به اون مقامش الله میگه نشد عبد باخی من منو تو چی اون نیاز داریم پای هم دیگه بیستیم محکم هم بیستیم سفر همون چیزی که دیروز اشارکه مثل ممی فتواد دو مترااحم که مثل, مثل جسد واحد یک جسدن به هم چسبیدن جدا نمیشه نظر نظراتش شیطان مشکلات دنیا تو را جدا بکنه تو کنه گوشگیر بکنه بدترین درد گوشگیری رسول الله صلی الله علیه و سلام این ان, ان لکل شیء شره و لکل شیء فتره فمن كانت فترته على سنتی فرجوه الله هممون امتحان واقع میشه لکل شیء شره شور و شوقی داره هر چیزی عبادت شور و شوق الان ما تہجد میخونیم هر چیزی برای خودش این نشاط داره و هر نشاطی در مقابلش اون روحیه بندگی اون روحیه تعبدی شور داره و فتور داره فتورش خستگیش تنبلیش زدگیش از جمع از جماعت، از خودت بیزارید اینها مشکلات روحی روانی محاله که برای کسی پیش نیاد رسول الله صلی الله این شخص در اون حالتی که خودشو باخته یا خسته شده یا تنها شده اگر خودش را بر سنت من پایدار نگه داشت امید درش داشته باشه تمعی درش داشته باشه وگرنه نه خودتو نباز باختن روح و روانت مصادف با ایمانته از لحاظ روحی تضعیف شدید روانی تضعیف شدید نتونستی بجنگی با مشکلاتت اونجا هست که ایمانتم بستو گرفته میشه یعقوب علیه السلام درس ها که به ما میده همینه تو این مصیبت ها یعقوب مصیبت زده است پس صبر همیشه خودش رو متعلق کرده با الله چسبیده به عبادتش به اطاعتش نمیذاره با این مشکلات اسفا در بیاد نمیذاره محکم صفت خودش رو نگه داشت این مشکلات برایش پیش اومده ولی با این وجود اون مقام عبودیت و بندگی خودش رو نگه داشته اینطوری باید ما سفت و محکم باورجا و سوار باشیم همه چیز در زندگی شوحت ازش بزنین الا عبادت الا نماز الا باورجایی استواری بر نماز خصوصا وقتی که ما میدونیم نمازمون ناقصه و, ناقص و نیازمند سنتیم سنت قبلی بعدی تهجد ان الله ویترن یحب الوتر اینها باید ما روش یک صفحه باز بکنیم در زندگیمون صفحه بندگی و عبودیت و استقامت بر طاعت و عبادت سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله والحمد و صلی الله علی محمد و محمد